آقا جون در محضر بزرگان میریم ساکت باشیم خدا بیا مرز مرحوم علامه طبعه. مردی بود آقا مردی بود این مرد خدا یکی از دوستان ما نقل کردن علامه حالا حالا آشناخته نمیشه گفت در خدمت مرحوم علامه تواتبایی نشستیم یکی از ماها سوالی رو کرد. مرحوم علامه تا رفتن جواب بدن یک طلبه کمسن سال جوان بی تجربهی شروع کرد جواب دادن مرحوم علامه ساکت حالا ما به احترام علامه تبا تبایی حرف نمیزنیم ولی هی این پام پام میکنیم ما آمدیم و از علامه سوال میکنیم بذار آقا فرمایش بکنه. هیچ حالی خود علامه ساکت, ما ساکت. این آقا بافت هرچی میخواست به بافه بافت وقتی فرمایشاتیشون تموم شد ساکت شد مرحوم علامه فرمودن به همون طلبه لط کنید توی قفسه کتاب خونه شماره فلان کتاب فلان رو لطفاً بیارید کتابو صفحه فلانو باز کنید اونجا رو بخونید آقا جون یه چند ساعت از این سفر رو خوندن خود طلبه متوجه شد هر چی گفته اشتباه بود چقدر وقت بقیه رو گرفت گفت ببخشید آقا اینایی که من گفتم هستی که اشتباه بود گفت حالا جواب اینجا هست در اینها حال... آقا جون ما اینو یاد بگیریم دوتا گوش داریم یه زبان چقدر نیاز داریم بشنویم چقدر نیاز داریم یاد بگیریم یه فرض کنید بنده بچه, بچه بچه بچه طلبم حساب نمیشم دو روز درس خوندم روز سه بوم میگم چرا پای صحبت من جمع نمیشم؟ یکی بنده خدایی میکنف یکی روز اول اومد پیش ما منظومه بخونه روز اولی که منظومه رو شروع کرد گفت اصلا تو استاد اختلاف این فوقه ها با ما حکم ها چیست؟ <تصفح> حالا <تصفح> چند روز بخون برو جلو تا بعد <تصفح> حالا دو کلمه خونده هی میگه آقا افسوس قدر ما را نمیشن در محضر ما جمع نمیشون آقا بشنوید خیلی هم باید بشنویم حالا حالا